بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بسال الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله تیبین التاخرین المقصومین لاصی ما بقیت الله في العرزی رب شهر صدری و یسر لعمری وحل لغدا من نسانیت و حقوم وَمَا تُوفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَرَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِي اللهم أَلَيْنَا الْحَقَّ حَتَّاً فَنَتَّبِعَهُ وَالْبَاطِلَ بَاطِلًا فَنَجْتَنَبَهُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رحمتك يا أرحم الرحيم وجب این سؤال که الان درستم رسيد مفصل بند بحث کردم نه این برداشت اصلا درست نیست نظر مرحوم علامه را میدونم و مفصل راجب نه به این نظریه و هم کتاب نوشتم هم مقاله چاپ کردم هم توضیح دادم صریح روایتی که به اقل عرف علی عباد و نوع این حدیثی هم که اینجا اشاره کردی این نوع احادیث اصلاف شده که سند نداره دلالتش بحث دیگری داره منطقه کسی که این براش سوال شده بعد مراجعه کنه من مقالات و نوارهای در این رابطه رو البته بعضی نوارهای کلاس نبودن شاید نتونن باید آشنا بشن اضافه کسی که سوال کرده میدونه چی میگن بعد اشانده توضیح میدونه اما بحث امروز ما به خلاف همه چارشنبه ها تغییر تقریبا یک اتوبوس از دوستان حسینی آزم کربلا هستن و بنده نمازه خدمت ها نشانده اینجا میمونم قرار شد که راجب زیارت صحبت کنیم و نوعا هم بعضی از دوستانی که آزم عمره میشن یا آزم اتبات عالیات هم یا آزم مشهد مقدس هم هی مراجعه می که مثلا راجب زیارت و زیارت بهتر و هدف زیارت رو اینها با ما صحبت بکنی. ما قبلن جلساتی داشتیم صحبتهایی شده بود حتی در یک زمانی سه جلسه به بحث زیارت بحث کردیم ولی چون نوارهاش ظاهرن خیلی قدیمی شده و بعضی جاهاش هم خیلی خانا و شنوانییست قرار شد که این جلسه رو دیگه ما مجددن به این بحث با هم داشته باشیم اجازه میخوام از دوستانی که همه ی ها رو اون بحث خاص رو با هم پیمی گرفتیم این هفتر و من رو من اجازه بدن رسو حوض کنیم و انشاءالله عمری باشه هفته ی آینده ادامه همون بحث رو با هم خیلی خواهیم گرفتیم و اما در رابطه با زیارت خب ما یه بحثی داریم به ویژه در فرهنگ شیعی البته در احل سنت هم قیر از وخابیون فرد اهل سنت هم در اصل این مسئله با ما شیعیان مختلفند حالا شدت و ضعفش نه فرق میکنه اکثریت اهل سنت منهای وحابیون زیارت میرن عرض ادب میکنن شما اگر الان در مصر برید در شهر قاهره در میدان اصلی شهر قاهره رأس حسین بارگاه بسیار مفصلی است که میگن بعضیا که سر مقدس علی عبدالله حسین رو بردن اونجا دفن کردن. حالا خدی تاریخیشی شکاری ندیدم که این سند داره نداره چی شده. اما منجور میده شما الان اگر هر وقت شبانه روز که بازه وارد اون بارگاه رأس حسین بشید، جمعیت اهل سنت قاهره اونجا خورند زیارت میکنن، گریه میکنن، توسط میجویند. حتی مثلا از سر مخوان بیان تو خیابون، نه از داخل اون فضایی که بنوان حرمه، از سر مخوان بیان تو خیابون اینجا به پشت حرکت میکنن که رو به طرف اون مقام رسول حسین باشن، این از تو خود نشن مثلا، ناجه دیگه فرابان، اصل بحث زیارت من های بحث وخوای ها که انگیزه خاص سیاسی بود و میخواستن عظمت این مالکن مذهبی رو زیر سوال ببرن که ما تو بحث های وخواابیت نقد کردیم سیدیش هست چهتابشم انشالله در میاد دوستان میگیرم اونجا بحث شده من جزازه بده وارد اون مغوله نشم فعلا در همین حد که اصل بحث زیارت بحثی نیست دا بتونه با توجه به منابع دینی ما از ازش به راحتی اما زیارت یک عملی که از ما انشونها سرمیزنه ارزش عمل به پشتوانه معرفتی ممکن ممکنه دو نفر با هم یک عملی رو انجام بدن اما از یکی به جهت معرفت خاص و سطح بر سر معرفت اون عمل به مراتب ارزنده حساب بشه از یکی دیگر که ظاهر عمل با او فرقی نکرده به همون شکل عمل رو انجام داده اما در سطح معرفت اون دیگری نبوده اصلا قابل مقایسه با اون دیگری نباشه این در حنی امور میتونه جاری باشه ولی در مباحث معنوی و دینی بیشتر حالا در همه امور عرض کردم به یک نمونه ارز کنم خیلی ساده ازان یه مذرعه رو به من و شما میدم میگم اینجا گل پرورش بدید یا یه درخت میوه رو پرورش بدید ما مشغول کار میشیم، یکی بلد است میداند آگاه چگونه کار کنه اولی هم داره آبیاری میکنه دومی هم آبیاری می کنه. اولی شخ میکنه. اولی شوک میکنه دومی هم شخ میکنه. اولی کود میده پاشی میکنه دومی هم کود میده پاشی میکنه. ولی اولی آلمانی کارو میکنه. میدونه چجوری باید شخ کنه. چه موقع باید آب بده؟ چه مقدار باید آب بده؟ چه موقع سمپاشی کنه؟ چه موقع کود بده؟ چه مقدار کود بده؟ با اون دیگری قابل مقایسه نیست. حتی در مسائل دیر معنوی حرفا مطمئن میشه اما در مسائل معنوی حساب دیگهی داره فالان حساب دیگه رو با هم میخوایم بحث کنیم مثلا شما در روایات معصومین علیه السلام دارید که اگر کسی دورکت نماز با معرفت بخاند نسبت به کسی که درکعت نماز خونده ولی معرفت اولی رو نداشته این اولی هزار برابر دومی اجر داره این یعنی چی؟ یعنی چی باید داشته باشه؟ و این اجر بالاتر است یعنی لذا اگر ما زیارت رو که به عنوان یک فعلی از افعال داریم انجام میدیم اول از واژه زیارت شروع کنم که ببینیم با معرفت چقدر فرق میکنه بعد بیایم زیارت به معنی خاصی ترامریم ما ها رفتن کربلا رفتن نجف رفتن کازمه رفتن سامره رفتن مشهد رفتن مدینه یا غیره مثال حالا اصل زیارت در لغت ملاقات کردن دیدار داشتن شما الان به زبان عربی مثلا میگید که رفتید خونه پولانی رو ببینید برگشتید بگید کجا بودید میگه رفتن به زیارت پولانی تو زبان عربی میشونی اینجوری بگید رفتن بودن زیار این یعنی زیارت فلانی نیست که تو فارسی شما میگه رفتم دیدن فلانی. من تو خوشی شما رو میبینم, میبینم. کجا بودی؟ میفرمایی که رفتم دیدن فلانی. این دیدن رو به عربی برگردونید میشه زیارت. رفتم زیارت فلانی. خب ما دیدن زنده ها به منی ظاهری. میرم دیدن فلانی. خب این دیدن رو برای چی میرم؟ برای چی میرم؟ یه وقت هست میگم دلم گرفته خصفی شدم هیچ کار دیگه یه هم ندارم میگم خب داریم یه چند یه گانزو بسیدیم گرده کنیم هفت بزنیم یه چای بخوریم پس خوشتوانه دیدار من از کلانی رفع خستگی خودم هم گرده کردن و حفظ دادن و یه چایی خوردن و یه چند لحظه مثلا وقت میدوری پر کردن خب حالا همین کار در یه حالت عادی ممکنه بگیم خب اشکالی داره نه من خسته شدم دیدم فلانی ام اینجا تو خونه الانم این وقت به من میده باشم برام یه دقیقه دیدنم ایشون با هم بشینیم حرفی بزنیم چای بخوریم گپ کنیم چطور خوش بگیم بخندیم خستگیمون در بشه ولی اگر این فلانی یک چهره ای علمی معنوی اخلاقی عرفانیه در سک بسیار بالایی باشه که شما یه نیم ساعتی یه ساعتی رفتید پیش فلانی میتوانستید اطلاعات بسیاری به دست بیارید شناخت علمی خوبی پیدا کنید سوالاتی تر کنید به شما جوابهای بسیار قشنگی بده تجربیات زندگیشو از او بپرسید یادداشت کنید بعد تو زندگیتون پیاده کنید به جای همه این افعال که چقدر تو زندگی شما تاثیر بگذاره فقط نشستی در محضر این مرد خدا، چوب گفتید و خندی دود چای خوردید یه مقدار شوخی کردید و بد اومدی بعد اومدید رفتید بعدا من به شما بگم حیف نبود، همش فرصتی رو از دست دادی. آخه چرا دیگه خلاف شر کردم؟ میگم نه نه خلاف شهر نکردی من بر خلاف میعار قرآن و روایات بود از نظر ظاهر نه چه میگی میگم از نظر حرام و حلال اگر بگی شما خلاف شر عمل نکردی ولی از نظر بحرمندی که یک مؤمن باید از هر فرصتی استفاده بجا بکنه شما وقتان بندی خدا رو ظاهی کردی وقت خودتان به جای اینکه که جفت میدی به سوال میکردی. به جای اینکه فقط وقت سه سر به چای بکنی یه معذری رو تعبیل کردی. یه راهنمایی نمایی میگرفتی. یه از اون که تجربیاتون چیه؟ اطلاعاتون در رابطه با فلان مسئله این بهتر نبود؟ پس یه زیارت معمولی یعنی دیدار همین عالم ما وقتی دیدار افراد میریم حالا مثال خیر محدودهی دیگه بیارم باز که همین محدوده های معمولی دنیاوی ما مثلا سنده پرسوری اران در رابطه با شخص خودم بگم خب من این صحفه عذیت هم بکنم. حالا رفتن در محددیدار کسی زیارت دیدار کسی یا نمی یا می فرد تو هر یک نمی دانم. این فرد اولین متخصص کره زمین است در مداوای یه همچه هایی حالا به من هم گفته در خونهش بازه میگه بفرما من میگم فعلا بیخار آخه بچای دارید آقا بگه بله چای هم دارم هم هوا گرم شربت چی؟ بگه شربت هم بد میده بگم میون دارید بگه هستی تو خونه هست میارم بگم حالا من نشستم بگم چایی کو بعد شربتتون کو میوه رو میخورم حال دارید شخص کارتون بگم چاسه جفت هم میگه اون آقا ممکنه بخنده سر شکنه جفت پایی بعد من از اتاق میام بیرون شما به من میرسید بگید میدونید ایشون اولین متخصص مدابعه انجله بود جوش میگی اجاب فرصتی رو از دست بدم من یه همچه ناراحتی دارم که این همه داره منو اذیت میکنه منو تو اتاقش بود شایم داد میبه داد پذیرایی هم, هم کرد بس معلومه که منو قبول داشته. یه ددا کاهل و بود تصدیر صاحب خانه چیز من ارزه نداشتم مشکلمو مطرح کنم من ارزه نداشتم مسئله مو در میان بذارم تا بسنم از اوی ای ببرم اینجا من اگر بفهمم تأصف و تأثیر داره یا نه قدیم فرصتی دست دادم حالا اگه این حساس تر بدانم یه همسو فردیه فرد از من نمیدونستم حالا که نمیدونستم، خب در حد اینکه چای داری می‌بداری، جوش می‌گم به خاندیم رو تموم دستشویی می‌شود ولی در فرزی که میدانم این انسان یه همسو فردیه و خودم هم دارم می‌بینم که صرف می‌کنم و اذیت می‌شم، اما به جایی که بشویم که آقا چای نمی‌خوام، این چای که الان من خونه خونم می میتونم خودم دام کنم بخورم. حالا می‌بینم و خورم نخورم مگه چی میشه؟ مگه زندگی منم فقط جو گفتن و خندیدنه آقا به جای همه اینا شما بگو من چی کار کنم هنجرم خوب شه ببینید برخورد من با این آقا در دیدار ظاهری دنیاوی به میزان عرفتی که تیرست با اون فرده و رابطه خودم با اون فردارم دیدارم تغییر میکنه یا نه و گفتیم دیدار زیارت دیگه من رفتم زیارت اون آقا من رفتم دیدن اون آقا کجا بودی از دیدن فلانی میان خب چگونه دیدنی شد دیدن من این شد که من بارا سلو گفتم و من فندید. دیدن من برای این شد که من تشنه بودم آب خواستم و من آب شرقی داد حالا این دیدار رو این زیارت رو بیاریم زیارتی که ما تو پرهنگ دینی داریم یعنی اولیای دین را یه وقت در شیاطشان مثلا زمان پیغمبر اسلامی شما فرض ایران را افتادید وقتید مدینه پیغمبر ببینید از نزدیک وقتید به زیارت پیغمبر به دیدن پیغمبر زمان اقید المؤمنین در نجف شما از ایران را افتادید وقتید نجف عشر کوفه اون زمان کوفه بود کوفه زمان این کوفه تشترن من از ایران راه خدم رفتم کوفه این همه را رو کوبیدم این همه دهمات رو تقبل کردم حالا اونجا حضرتم انایت دارن امامن لطف دارن منو پدیروفتن تو خونه شم دادن مثلا حالا من در محضر امام علیه السلام وارد شدم تو زمان حیات ظاهری امام چه برخوردی با امام دارن چی نزره میکنم مثلا تا رسیدم به امیر المؤمنین آقا فلان همسایه خیلی عذیت هم میکنه میشه شما یه نامه بدی ببرم اون همسایه ایجا من اذیت نکنه من نشکرم فقط با امام همینه از اینجا پاشدم رفتم کوفه امیر المؤمنینم رأس حکومت خلافت اسلامی منم منوان یه شیعه. از اینجا پاشدم رفتم کوفه میگم آقا همساییم من اذیت میکنه شما یه نامه بدید ببره. یا مثلا آقا دلم میخواد خونم بزرگتر بشه، دلم میخواد اتومبیلم رو تغییر بدم در بیان من با امام تو این حدا میشه مثال آیا در اعتقاد ما پرگردی با مثالی که از اگه من وارد این در باز آقا تعرف کرد بیا تو من رفتم داخل میدانم کسیست که میتونه کسالت منو مداوا کنه یا نمیدونم فرضی که در اینجا داریم ما وقتی داریم میریم عسوات عالیات چه نجف چه کربلا چه کازمن چه سامرا آیا باور داریم که امام زنده و مرده ندارد یا نداریم اولین قدم اینه باور داریم که امام زنده و مرده ندارد اگه باور نداریم اول باید باورمان کار کنیم هم این همه مواظب داریم آقا نه امام اصلا در فرهنگ دینی ما مرگ مرج چیه روح از بدن جدایی روح از بدن میگن مرج خب روح که از بدن جدا می شود نفس از بدن جدا می شود زمانی که با بدن هست مثل الان من شما نفس میکشیم راه میریم سخن میدیم الان نفس من درک من تشریف من بحث من سؤال و جواب من همه اینا مربوطه به چیه به نفس من رید اگه نفس نباشه که من بدنم یک لاشیه است مثل بقیه اجسام این عالم حتی از یک جهت بدتر این فرش حالت طبیعی خوب شداره بدن من نفس نباشه ممکنه متعفل میشه حضا با زیر خواهد کنن که سحفونش بالا نیاد حالا نفسی که در هجاب ماده است این آثار رو داره. حالا اگر نفس از هجاب ماده آزاد شد چی؟ نفس از هجاب ماده آزاد شد چی؟ رؤیای صادقه چیه؟ این همه آثاری که رؤیای صادقه داره به قول عرفا مکاشفه نومیه مکاشفات نومیه که رؤیاهای صادقه است مگر <تصفيق> آزادی نفس در خواب از عالم ماده و سیر در عالم معنا و کشف حقایق عالم معنا نیست که برخی از بزرگان بودند میگفتند گفتن فکری داریم معضلات علمی داریم غفت می کنیم روزه میگیریم، نمازهای مستحبی می کنیم. از کاری را زیر نظر اهل فن مداومت می تا در عالم خواب چون در عالم بیداری که من این رو ندارم در عالم خواب روهم هم بتواند این اجازه رو پیدا کند خدمت بزرگانی که این مشکلات رو حل میکنند برسد و از اونها سوال بکنند مثلا بعضی عدیه داریم اگر این دعاها رو بخونید با تهارت بخوابید خوابید چنین چنان ممکنه خواب امام رو ببینید ممکنه خواب پیغمبر رو ببینید خواب بلانش... بلانشخیت برگرسته رو ببینید چرا میگن قبلش روزه بگیرید قبلش یه سری عبادت رو انجام بدید؟ قبلش یه از کاری رو مقید بشید و حتماً با تهارت بخوابید چون سنخیت نفس و روح ما برای مجالست با اون پاکان تا حدودی فراهم بشه در مجلس پاکان پاکان رو راه میدن رویای صادقه انسان ها نشنگر حد پاکی روحشونه هرچه روح پاکتر بود رؤیای صادقه بیشتره حالا اگر کسانی قدامتی پیدا کنن که این مکاشفه رو تو بیداری داشته باشن اون که دیگه چی در یک سطح خیلی عالیه الان چیزی راجع نمیگم خب اگر ما در حالت طهارت نفسانی قرار بگیریم ولو تو همین عالم ماده تو عالم ماده در عالم خواب رویاهای صادقه می‌بینیم در عالم بیداری اگر رسیدیم با اون مقامات بالایی که عالی نفس خیلی بالا باشه به تعبیری میگن چشم برزخی باز میشه. باز یا با چشم برزخیشون چیزایی رو میبینن که بقیه نمیبینن. با گوش برزخیشون چیزایی رو میشنون که بقیه نمیشنون. خب حالا اگر مرگ جدای نفس از بدن است، از، نفس آزاد میشه از این تعلق. پس باید علاوهش بیشتر باز بشه. خب مرگ امام مرگ پیغمبر یعنی چی یعنی جدایی نفس پیغمبر از این عالم ماده جدایی نفس امام از این عالم ماده امام تو عالم ماده هست برای نفسش حجاب نیست حالا اگر از عالم ماده نفسش جدا بشه که دیگه به طریق اونها حجاب نیست پس امام مرده و زنده داره برای آدمای معمولی هم مرده و زنده نداره ولی چرا فرق میکنه؟ چون وقتی نفس من از بدنم جدا میشه اگر تعالی نفسانی نداشته باشم اگر تکامل معنوی پیدا نکرده باشم نفس من در حجاب اعمال بد من زندانی میشه دقیق کاری که انجام میکنم؟ در عالم برزخت و در عالم قیامت که باز حساب دیگه ای داره نفس من در حجاب اعمال ظلمانی من گیر میفته آزادی نداره اما اگر من حالا امام و معصوم نم انسان عادی نفسم در این عالم زحمت کشیده باشه یه تعالی نفسانی پیدا کرده باشه حالا که نفس از بدن جدا شد به اندازه اون تعالی که داره شی این رو میتونه بیاد به ما بگه. لذا بعدی وقتا افراد مردای رو در خواب میبینن خبرهایی رو میاد میده عجیب و غریب. خیلی عجیب و غریب. که اجمالا میگن رویای صادره. تو بادی میان به خواب شگردش و مشکلات علمیش محل میکنن تو بادی مسائل مثلا اخلاقی اجتماعی میان به خواب یا نه حتی تو های معمولی بندی یه جلسه توی شهرستانی دارم. هر چند بار میرم. یه سری میزنم یه داشتن کنم میام. همین هفته قبل که تحقیل بود برای منظور رفتم و یکی از دستگان دور من خبر نداشت از این قضیه به من زنگ در گفت خواب دیدم اون خونه ای که ما تو اون خونه می رفتیم و این جلسات بحث میکردیم که همین هفته گذاشته من اونجا بودم گفت خواب دیدم مادر اون آقا رو که دنیا رفته برگش گفت من تا زنده بودم چقدر دلم میخواست که این جلسات اینجا دایر بشه ولی من تا زنده بودم نشد خوشحالم خواهم که بعد از مرگ من این جلسه دایر شده از من پرسیدن جلسه چیه خب بروی این هر سالها مرده رفته حالا خونه پسرش یه جلسه دینی تشکیل شده اون میاد به یکی دیگه کسا خبر نداره بعد میگه که خوشحالم که این جلسه تشکیل شده ولی من تا زنده بودم دلم خواستم که تشکیل بشه خب معرفت چیه؟ خود آینه نفس, جدای نفس از بدن خب نفس چه قیطره رو داره حالا اگر نفس, نفس امام باشد نفس پیغمبر باشه و نفس امام و پیغمبری که شهید در راه خدا باشه ولا حسبن الذين قاتلوا فی سبيل الله امرا بل احیاء اند. اینا مرده نیستن، اینا زنده. خب اگر این معنا برای من جانی افتاده، چرا در ازم دخول میگم اشهد و انکه؟ فقط او کلامی و تشهد و مقامی. من شهادت میدم تو میشنوی من چی میگم؟ من شهادت میدم تو موقعیت منو در یا میدونی من چیم که ابن اینجا باش بادم دارم اجازه میگیرم بیام داخل این حرم زیارتت کنم اجازه رو من میدی یا نه شهادت میدم جواب میدی بلی جواب میدن ولی کی میشه به خدا قسم بوده کسانی که وقتی سلام میدادن از سلام یا عبا عبدالله جواب میشیدنده اونا جواب میدن اون رضیهی که میره سندرشتی راجبه موجز... میره داماد راجبه معجزهی پیغمبر میکنه می کنه یا بیا میره داماد میگه معجزهی پیغمبری نبود سنگریزه تو دستش به زبان آمد گفت اشهد انکه رسول الله بلکه معجزهی پیغمبری این بود که گوش ها را شنوا نبا کرد چون الان الانم داره میگه الانم هر سنگ در هر گوشه آدم در واقع داره فریاد میزنه اشهد انکه رسول الله به فیلم اسلام ولی کدوم گوش میشنوه لذا شما تو عزم دخول به امام میگید شهادت میدم که میشنوی من چی میگم موقعی فمن میدونی جواب منو میدی خب اگر با این شناخت داریم میریم زیارت یعنی میریم دیدار ما توضیح کرده دیدار چی؟ حالا رو این چی اول کمی کنیم در بحث قرآنی و در بحث تفسیری ما مخصوصا شیعیان مقامی که برای حیغمبر و امام ذکر میشه که از مقام بالاتر ما دیگه کلمه نداریم خلیفه الله اَنی جا اِلن خلیفه چون یه جلسه قرار من این بحث بکنم نمیتونم طول بدم وگرنه اینا خیلی باد بحث بشه اَنی جا اِلن سَنرزی خلیفه. خدا آسمان و زمین و طبیعت و خلق کرده نبات و حیوان و خلق کرده زمین مستقر شده اجنه آفریده شده اند سرشتگان آفریده شده اند ولی میگه یک موجودی میخوام بیافرینم که او با باریه فرشت انسان. اینو با چی بیان میکنه؟ میگه نیجاهلون عرض خلیفه. میخوام خلیفه بیافرینم. یعنی موجودی که توان داره به مقام خلافت الهی برسه. که اولین خلیفه های فرزرگار انبیایند و الی السلام و به نسبتی که حباییت از اونها میکنن به اون نسبت مقام خلیفت اللهی پیدا میکنن خب مقام خلیفت الله یعنی چی؟ روش محکس کنی میکنی یعنی من الان وقتی میخواد وارد حرم امیر بشم دیدم اومدم زیارت یعنی چی اومدم دیدم دیدمی چی؟ دیدمی کسی که قرآن میگه خلیفت الله هست روایت میگه خلیفت الله هست. خوب خلیفه الله یعنی چی شما میگید که یه مغازه سوپری سر کوچه ماست ایشون یه فروشنده خیلی دقیق و خیلی با توجهه اولا حرام و حلال سرش فکر میشه همیشه در فروش تو ترازو سر می کنه یک سمی جنس و به مردم بده مدیون نباشه احترام و مشتری رو نگه می داره رو رایت رو خیلی تر حقیقی فروشگاه سوپر هر وقتی هم که خودش نیست که را جای خودش گذاشته که مثل خودش همین اهداف رو پیاده کنه اینجا می کنید بگید که این فروشندهی ای که جای سوپری قرار گرفته خلیفه سوپریه. خلیفه سوپریه در چی؟ در اداره سوپر خب اگر این سوپری دقیق است حوانم دارد کسی را جای خودش بگذارد که دقت خودش باشه و این کار را نکند نمیگیم خلافه؟ خب حوان دارد کسی را میشناسه که میتونه جای خودش این کار را انجام بده خب پس رو میاره جای خودش بگذارد در حدیه سوپری حالا یه بیمارستان بگیرید بحث رو ببرم بالاتر آقا یک بیمارستانی مثلا حساس هم هست مثل قلب یک کمی دیدقتی ممکنه انسانو رو بده یا مغز و الان میخواد جمجمه یک انسانی رو عمل جراحی بکنه میخواد قلب یه انسانی رو در بیاره قلب دیگه جاش بگذاره میگیم آدم دقیقی ماهری وارد خیلی خوبه ولی قرار پنج ماه دره مسافره فکری کرده کسی رو جای خودش فکری می‌گیم میگیم بله فلانی رو جای خودش بزشته و او به ما گفته که همین کاری که من می‌خوام بکنم این می‌کنه. کنه قدا خلیفه اون تو بیمارستان بیمارشتا خب خلیفه خدا در زمین یعنی که این جایلون تلعرز خلیفه خلیفه من در زمین این نکته قرآنی فقط با اشاره درد میشم که اگه دوستان به ذهنشون سوال اومد جوابشو کنن نه یعنی خلیفه خدا برای زمین برای جای دیگه نه خلیفه خدایی که در زمین قرار گرفته وگرنه خلیفه خدا برای کل هستی نگاه میگون فرمودن که عمر طراغ سما اعرف من طرار عرض سلونی قبلا ترس بدونی این بخش دو دا سرکایی ندارم حالت بخوام این رو بگم خلیفه خدایش یعنی چی؟ یعنی کاری را که خدا می خواهد در زمین که جایگاه است برای انسان انجام بده این موجود به الله اون کار رو معنی کنه مرلی الله یعنی کجا داری میره؟ ره؟ آقا کوچه یا سینیه دارم عبور میکنم. در خونه بازه طرفی که بفرمایید من نمیشون سمین چیه داره میگه به فرما به زا ممکنه باید بیخیالی بگم حالشه ندارم وقت ندارم یا میگم باشه میام چای داری بیام پس من او رو در حد یک چایی شناختم میوه حاضر داری یا که تعرف میکنی بگم یه میوه بخورم یا کرده کردنانا میگه به میگم شما که منو تعرف میکنی حالش داری بیامی کنی با هم جد بگیم بخندیم اما یه طرف میگه بیا. اینو بر جستگان عالم منتظرن وقت میده که برن دو دقیقه پیشش بشینن سوالاتشونو رو بپرسن آقا به زیارت کی داریم میریم؟ خلیفه الله یه قضیه برای هم تقیید کنم برگردم مرحوم حضیم زدری آقای شیرازی رزوان الله فعلا علی. آقا چی بودن؟ چی بودن؟ خیلی از عزیزان توی این هفته الان اینجا هستن با من زنگ دادن را یه موضوعی چی کنیم؟ گفتم نمیگم نیستن ولی مخفی شدم و راضی هم که کسی اینا معرفی کنیم یه زمانی بود اینا در دست هست بودم من و آقای شیرازی کسیست که من استاد مصاد با اون سیترهی که تو مبارث دینی داشت کتابی ازشون چاپ شده سیری در نهج البلاغه اگه نخوندید حتی من بخونید در این کتاب سیری در نهج البلاغه مرحوم صادق متحرین نظم می‌کنن من حوزه قم درس می‌خوندم یکی از هم های ما که اصفهانی بود فمرحوم یزدی آقا شیرازی اصالتاً شیرازی بودن ساکن اصفهان بودن و من فرمودم که فاضل‌خور وقت تو بازار بریم اصفهان پای درس نهج البلاغه یزدی آقا بشینیم. من اول به ذهنم انگلیش تو مه سری در نج بلاقغست بخونی میگن تو ذهن من گذشت ما که تو حوزه داریم درس تا فکر می اصول میکنیم این درس ها رو میخوریم ماا وجبلاقغ چی میخوادی یه فردی بگه که مثلا برای ما بعد گفتم توباله گشتی اون شهر میزنیم می در هم میریم با رفتم پای درسز میزری آقادم مثلا نز بلاقه یعنی چی؟ بعد وقتی میخوان اسم استاد رو ببرند دو سط لقب زیک میکن. من اچی برن حاجی جلی آقا شیرازی این حاجی جلی آقا یکی از دوستان من که خدا او را بیامرزد پس من از من خیلی بزرگتر بود ما با هم از داخل وطن خونده بودی اون نزد برای من نرد کرد یه سفری با حاجی جلی آقا شیرازی و از علمای معروف اصفهان رفتیم کربلا حاجی مال 50 سال قبل قربان کربلا تو صحن امام حسین اونا هم از علمای برجسته بودن. این آقا گفت منم همراه شدم دوستن این علما با هم بحثشون شد که با چه زیارتی ما امروز امام حسین رو زیارت کنیم. امین الله بخونیم. جامعه کبیره بخونیم. زیارت مخصوص حضرت رو بخونیم. چه بخونیم؟ همزیدش این صحبت میکردیم. یک ظاهراً معلوم شد از محجه و صحبتی برید. روستایی بود. اومد از کنار ما رکشه. دیدید تو صحن امام حسین خوش به زبلوستید. زلی پیداست ایون خب ما رو به ذریع واسده بودیم پشت قبله رو به ذریع داشتیم نگاه می کردیم همینطور که داشتیم با هم حرف می زدیم این آقا اومد رد بشه یه نگاهی به ذریع کرد خب از سلام که یا همه کاری درست خدا و رحمت الله و برکات خب خیلی نگفت از نوزنی آقا قشن یه حوش رو دفتاد خب ما از نوزنی آقا رو به حوش آوردیم تخیی به حال اومد خب خدا سلام علیکم. یا همه کاری دستگاه خدا خیلی نهلی خلیفت الله عزیز خب بله همه کاری دستگاه خدا عزیزمان این شرک نیست در دخت وحابی که آلا به دست استعمار شده ماما سلمونا رو عزیز سروایه ها جدا کنه شرکه خدا خودش میگه این نیجا ایمان سر عرض خلیفه من این قدرت رو رشت دادم من این اجازه رو دادم من این رو گذاشتم به ازن من این کارو بکنه لذا شما راجع به امام میگید یدالله ایدالله الله عین اید الله،, الله،, الله،, الله همه کاره درستای خدا خب زیارت یعنی دیدن یه همچون موجودی خب حالا به دیدن همچون موجودی بریم این یه فعریست اولی معرفت به دیدن کی میرم چه لغتی چه تعبیری چه عنوانی این بالاتر که همه کاره رستای خداست الله یعنی همه کاری خدا خدا به او قدرتی داده خدا به او توانی داده خدا به او اجازه ای داده که تعبیر دیگرش بگم چه می ولایت تکیبینی دارد نه تنها ولایت تشریعی ولایت تشریعی خیلی مهم نیست که چه مهم نیست. ولی ولایت تکبینی یعنی چی؟ یعنی کائنات در اختیار اونها همینجا اجازه بدید ما وارد یه بحث دیگه بشه ببینید شما الان در نظام ای عالمی که ما قرار گرفتیم نظام تعلیم تعلم معلم تدریس درس آگاهندن چقدر برای ما مهمه؟ چقدر مهمه؟ اونقدر مهمه که امام حسین علیه السلام برای که به ما یاد بده به, به معلم فرزندشون که حمد رو بهشون یاد داد ده همشه برای صلاح کرد طبق توضیحاتی که برای ما دادن یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی بحث تعلیم و تعلیم و کلاس و درس. و معلم خیلی مهمه خب بالاترین معلم بالاترین مربی دلسوزترین معلم و مربی حنرمنترین هر چی بگید دیگه لغتی بالاتر از اون ندارم حساب کنید در عالم تعلیم و تعلم و تربیت ما کیه استعدادهای موجود را در ما شناسایی کند خوب پرورش بده بیشتر از این میتونه؟ مثلا شما یه آقازاده رو میگید که استعداد اولین ریاضیدان کل زمین شدن را دا دارد میگیم این معلم ارزه داره پرورشش بده؟ زایش نکنه؟ اگه معلم خوبی باشه این آغازاده رو کمچه استعدادی داره نحوی با او کار میکنی که استعدادش بشه چی؟ استعدادش فعلیت در بیاد بشه یک مثلا ریاضیدان دقیق این آغازاده استعدادی داره میتونه قویترین جراح کوری زمین بشه استعداد استعدادشو بروز بدید حالا کسی که استعداد ریاضیدان شدن را نداره. به ما ربی بدی چی میگه؟ میگه ایجاد استعداد که کار من نیست بروز استعداد کار منه درست همه بشر کره زمین را قبول دارد یا نه. مربی معلم، تبیترری معلم، تبیتر مربی میگه بروز استعداد کار منه اگه به تازه، ولی ایجاد استعداد کار من نیست. اما کسی که ولایت تکوینی دارد، میتونه وجود را عوض کند یعنی ایجاد استعداد کنه ما داریم زیارت و بس کلاس تربیت ببینیم مربی کیه خلیفه الله شاگرد کیه ما که داریم میریم به زیارت هدف کیه فرشته بندازم چند بار زیارت کردم چقدر تو حرم موندم زیارت جامعه رو چند بار خوندم، زیارت امین الله رو چند بار خوندم شب قبل غرب امام حسین ملاحق به توست کمکم کنند بهشتم من رو به برای بهتر بدم اینا نمیگم نیست ولی بالاتر از این من نیست مثل اینه که دم در باز شده برای به من میگه خسته ای بیا تو میگم چلو داری بیا خب چلو کباب من بده میگه دید من رفتم چلو کباب خورده میگه خب حالا تو میتونیسی دردتو درمان کنی. به جایی کلو درد درمانی شد بهتر نبود. خب داریم پیشی کی میگیم؟ که خلیفه الله. خلیفت اللهی که به ازن الله وجود خلق الله را دگرگون می کند. یه نمونه برای تو کنم. هرات بهتر از من می دونیم. مرحوم شیخ امساری اومد حوزه علمیه نجف درس شروع کرد. خب شیخ دیسته علمش خیلی بالا. یکی از شاگردان فقه شیخ انصاری شوخی نیست کسی که بتونی کلاس شیخ انصاری بره خودش باید مثلا شما شاگرد دوره دکترا رو با شاگرد درستان هر دو شاگردند ولی خب کسی که شاگرد دوره دکتراست خودش این مراحل رو طی کرده کسی که شاگرد شیخ انساری معلومه کیه دیگه وقتی شیخ درس رو شروع کرد خود شاگرد متعجب میشه دیدم درک من درکی خیلی بالایی نیست درکی که دلم میخواست بهتر بفهمم یه مقدار وزیفه خودم شخصی عمل کردم مصطبوت رعایت کردم وجود سر کلاس نرم قبل از شروع درس این درس و دعاها رو بخونم این پیش مطالعه رو دیدم نه سخت بالاتری. فهمیدم باید کار دیگه چون اومدم تو حرم امیر المؤمنی شدم آقا جون من فلاش خودم رو میکنم هم بلی نمی کنم ولی نمی فهمم. من دلم بفهمم. شما ولی الله شما خلیفه اللهی شما ای که به یکی نظر مثل وجود را تشبیه کنید میخوام من عوض کنم من بخونم بفرمایید یه شبی خواب دیدم امیرالمومنی فرمودن که فلانی اسمش میذارم بنا مشهوریه بنا رو جهتی اسم میبره گفت فرمودن که گوشتو بیاجرو من گوشو بردم در دهن امیرالمومنی در بوشم فرمودم بسم الله الرحمن الرحیم از عظمت بیان حضرت از خواب پریدم پریدم دیدم که یه مقداری به عظام صبح منده مشغول نماز شب شدم نماز شب همون خوندم نماز شب شد نماز شب همون خوندم. هم خوندم حقیبات همون شد تقاب رو باز کردم پیش مطالعه کنم که برم پای دست شیخ انساری بعد از توی لوافت ها تقابی که باز کردم دیدم که مطلب میزوشه همان شد یه درگاه یه دلو چیش من باز شده یک فخری به من داده شد هر دار که رفتم سار در شیخ همساری که درست رو شروع کرد یه مختصری که درست رو بیشت شیخ چنان جذب اشکال من شد خب اصطاب می پرنید سوالی سآلش اشکالی جواب اشکال دوم کردم جواب یک خنجلسه قسمت و عمده درس شد اشکال من جواب شد دیگه کلاس نرزش شما درس من یه روزی بعد از درس شیخ آمد از کنار من رد بشه سرش آورد در گوش من سروز خیلی شلوغ نکن. اونی که در گوشت رو بسم الله الرحمن الرحیم رو خونده در من کابل از ظالیمش هم خونده خداها با خوندن نیست تنها با کلاس رفتن نیست تنها با استاد دیدن نیست اونایی که تکنشون میدن کی تکن بده؟ اونی که قدرت تکن دادن رو داره ی خود نیست که مرحوم های الله اصفحانی کمپالی معروف در اون شعر مشهورش با اون قسمت علمی که داره استاد همه مراجع و همه عرفا و فقه ها و فلسفه زمان و خودشه خدا رحمت کنه استاد ما رو می فرگوند من در یادیه سالا بیشتر نبود ولی یادم میاد تو نجف که مرحوم های کمپالی شسفتا سال رفت کرده نیومد از ایوان امیرالمومنین المومنین که وارد میشید این در اصلی که بزرگه دست در که این بردنید این این در کوچیکی این برد که وارد میشید دست راستتون زنیه به دیوار داره که قبر علامه هلیس این خواهی که میخواهید بذارید از این در رو قبر عیسی اللہ کنفانی واقع میشه خودش کفته من اینجا در کنید استاد ما میفرودد 70 سال قبل من بارها مرموم های کمپانی دیدم اینجا حالا اولین استاد حوضه اینجاست همه مراجع از بعد در دوز آخرین شاگرده های کمپانی های بهجه توی اینا بودن اینا استخار میکردن که شاگرده های کمپانی رو کرده. خب مرموم های کمپانی رو میدیدم اینجا افتاده بود زمین اگر کسی نمی نمیکرد فیال میکرد یه عواظ عوار رو روش کشید خب وقتی بلق می شدم به هم با می کنیم سنگاه از دو شب بعضی وقتا بعضی همی شما سکردن که شما فرما تمام درس و آستا در امیر در یه طرف یعنی اینا فهمیدن با خودشون رو کجا رسو کنن یعنی چی حرم امیر المقبلیم ریارت یعنی چی لیتا این مرد این مقام و عظمت وقتی برای حضرت زهرا مخاطب شعر بگه اون چه فکر و فکر لفظ سخن شما کنه از نمکی کلام خدا حق نمک ادا کنه میرسه با آخرین بیتش مصطغرا مت از درو به هیچ سوی زن که مثل وجود را فزه‌ی او تلا کنه دان که مثل وجود را فزه‌ی او تلا کنه او چه شرمجعنده همین مرمون حاجمزدری آقای شیرازی اون مرد خدا برای من تعریف کرد گفت خب من همراه حاجمزدری آقای شیرازی بودم تو تربلا ولی اما حالی چی بود باید عرضیم کنم خب ایشون فرمودن که من بعضی حاجتها را خجالتی میکشم از امام حسین بخوام خیلی کوچی که امام حسین بالاتر از اینه من از دره حاجمزدری آقای شیرازی من از دره حسینیه استهانیهای کربلا میخوام این حاجت رو به من بده در حسینیه این چی فهمیده بودن آقایان خانوما یعنی خلیفه الله است که به اذن الله برای خلق الله میتونه هر کاری انجام بده ولی حالا چیو بفرشندن چیو نپسند یه بزرگی بود من عقصدادی هم به گردن من داشت یه بار خصوصی به من گفت و من یه سفری از قوم رفتم مشکل از ما که رسیدم خیلی خسته بودم دیدم حال حرم رفتن ندارم نرفتم حرم امام رضا. شب استراحت کردم سهر برم استراحت کردم سهر آماده شدم برم بره یه حرم تو راه به یکی برکردم من رو دیکن شما کی ندی گفتن دیشب مشرف شدم خب من دیشب امام رو خواب دیدم فرمود من دیشب فلا منتظرم فلانی بیاد حرم خود دارم تو سرم از یه طرف امام چه لطف داره منتظرم فلانی بیاد یعنی بعضی به اینجور میخوان از طرف دیگر به من فهمون که شما که وارد شدی ای کاش با همه خستگی هم می رفتیم مثلا اما اصلا قضا بیداره اگه کنم پس ما به دیدنی که میریم خلیفه الله حوان خلیفه الله دست بالا بگیری تغییر موجودیت ما تغییر وجود ما استعداد ما را دگرگون کردن که خود این قابل مقایسه با چیزای دیگه نیست اما حالا که ما میتونیم از اینا همه کارا ازشون برمیاد دیدن رو مقدمه کلاس تحول وجودی قرار بدیم، معرفت در خواستن و محضر اینها رسیدم این خاطر از خودم بگم چون نقص منی میگم امتیاز نیست حدودی 27-8-9 سال بیشتر نبود مشهر مصرف شدم شب جمعه بود بالا سر حرم مامرزه علیه السلام حالم منقلل شده خب جوانی بود و اون جوانی بود و حال هوایی که تو سنا بود که ای کاش اون حال هواها باقی بمانه حالم منقلب شد دلم شکست یه توسولی جستم تو همون حال یه ای داشتم از مامرزه خواستم رفتم شب جایی که بودم مشهد خوابی شب خواب دیدم که وارد حرام امام رضا علیه السلام شدم وارد که شدم در زریع رو باز کردم خرمودن بیاتم من وارد شدم خب وارد شدم گفتم که خب اول افتادم رو قبر و قبر بوسیدم بعد گفتم که نمیدونم چا که اجازی میدن من داخل زریع باشم خوب از این فرصت استفاده کنم خوش تا قبر مسخر رو به تبله گفتم باید میشتنگی درست نماز خیلی اینجا میکنم که این نماز با فرق فر این مهره زیور زیبای, زیبای قشنگ از این مهرای کربلا قربت خیلی زیبایی بود مهر گرفتم بذار به این عبر متحر مثلا ایذاله باشه خوشقدر من مهر گذاشتم اینجا رو نگه کردم، هم خوندم سوره رو خوندم رکوع رفتم اومدم برم سجده دیدم مهرم تبدیل به موز شد خیلی با تعجب نگاه کردم خدایا من مهر گذاشته بودم این چرا موز چرا مهر, مهر من تغییر کرد من میخوام سجده کنم تو همین فکر بودم از خواب هرین خب حالا منگلش یه مرد خدایی بود برخمت خدا را مرد عجیبی بود من از او چیزهایی دیده بودم من جمله در تحریر خواب یه آلمی داشت که برای خود من اتفاق افتاد یه خوابی دیده بودم در خواب یه ذکری گفته بودم در بیدار شدن یادم ایشون زنگ زدم که من دیشب یه خوابی دیدم فرمودن که این توش بود یا نه گفتم بله همین بود یادم اومد. یعنی چی یعنی هم آدمی بود خدا رحمتش کنه. ایشون زنگ زدم صبح زود. حاجا من دیشب نگفتم کجا میشید. گفتم دیشب من یه همچو خوابی دیدم. فرمودن که حالا که من 289 سالم بود. فرمودن تو مکان زیارتی بودی دیشب. آشدم بله. در حال دعا به دست داد گفتم بله. اون حاجت دنیایی خاصی گفتم بله گفت همینجور که گفتم خبتم چکر؟ خبت موج خوبیه ولی جای مهر نباد قرار بگیره اون حاجتت خیلی مهم بود ولی هیف اون حال بود راکی عزید چی شد؟ موج و خوبیه ولی جای مهر نمیتونه قرار بگیره حاجتت مهم بود ولی حیف اون حال بود که خرج اون حاجت کردی آقا دلم شکست همون صبح را افتادم دفت محرم امام رضا گفتم آقا ممنونم بیشمه چشیدید بیشم به اون سهمان ولی خودتون کمکمون کنید که بفهمید چی بخواید. اینقدر اینا بزرگوار حتی اگر شما بخواید در به صدر مختلف بهتون آباهی میدن آشنایی میدن که چجوریه خب اینا رو عنوان مقدمی بحثم که زیارت اگر زیارت ما داریم به زیارت چی میریم در عنوان کلی خلیفه الله خب حالا میتوانیم یک انگیزمون اول حتی از خود بریم بیرون اینا رو گفتم حالا عزیب بریم از خود بریم بیرون آقا برای چی میری زیارت من نمیرم چیزی بخوام میرم فقط اراده هم رو نشون بدم اگرم شما بزرگید شما اولیای الهی هستید شما تمام رنجه ها رو تحمل کردید به خاطر هدایت ما از امیر نجف بگیرید تا کربلا تا برید خازمه تا برید هر یک از این بزرگوارانی که شهید شدن و در این اماکن شما زیارت شنیشانده با صحت و آفیت و فیوزات خواسته اونها برکردار شدن زیارت خواهید کرد و برگردید انشاءالله هر یک از این بزرگواران اگر به خاطر هدایت من و شما نبود اگر به خاطر رسالت الهیشون نبود این همه گرفتاری و مسائل رو برای چی تعمل می این اونه گوشه می مشغول مشکل عبادت سون شدن من بارها عرض کردم این فرمایش امام کازم فکر من به خودش مشغول کرده بود تا از استادم پرسیدم برای من توضیح داد امام کاظم علیه السلام و سلام وقتی که وارد زندان شدن فرمودن احمدالله روشه خلوتی میخواستن که خوب به عبادت هم یعنی شید مگه امام کاظم بیرون از زندان به عبادت مشکول نبودن خیلی روش فکر بکردن پرسیدم برای توضیح دادن فرمودن امام در خارج از زندان گاهی رسالتشون مسئولیتشون وظیفه‌شون ایجاب میکنه الان جای عبادت مصطفی با یه آدم ناجنس بحث کنه با یه آدم تضایید صحبت کنن فلان کارو بکنن فلان کارو بکنن ولی ما ایمان بردن زندان اون تکالیف ازشون ساقط شده حالا که ساقط شده اون کاری که باب میل خودشونه عبادت مشقول انجامه خب امان اگر برای هدایت من شما نبود یه گوشه میشست و عبادتش مشغول میشد معنی این مسائل رو تحمل کردن ما را رو یاد بگیریم ما هدایت بشیم ولی اعلام به ما برسونن خب اول بهتر نیست انگیزمون باشه بگیم ما اومدی من یکی از کارهای عربا رو خیلی دوست دارم که متاسفانه در ما ایرانیا در زیارت این رسمه به خوبی زیارت عرب های شیعه نیست خواهی به رهنه و یا مناسبت های دیگه از راه دور پیاده را می افتن هسته حلافه پا زده ولی وقتی میاد تو سحن امام حسین میبینه داخل حرم بره شلوق بقیه اذیت میشن یا داخل نمیده همین جلو با نیسته یا داخل میاد فقط به سرعت یه دور میزنه فقط میاد میگه لبه یا حسین نیست لا پیشه او حسین حبیب یا یعنی کاش جواب بده من شما کارتونو کردید مامونی که وظیفه‌مون انجام میدیدید حالا من خیال میکنم باز ذریه رو بچشم و بدم دیگری رو کنار بزنم، اینو را عرض می‌کنم این لا پیشه او حسین کاش جواب بده اون ما اول بیایم از نجف شروع کنیم بگیم یا علی من اومد و بدنم اول داره اینو چه بگم آقا من چجوری خدا رو شکر کنم که شیعی شما شدن من چجوری خدا رو شکر کنم که شیعی شما شدن اما آقای یه حرفی دارم اگه سلمان شیعی شما بود اگه ابوذر و مقداد شیعی شما بوده من با چه روی بگم شیعه شما ولی حالا می‌تونم خاصم و بحث رو کنم با انگیزه اگر میشه کمکم کنید منم مثل سلمان ها بشم منم مثل مقداد ها بشم یا بهتر نیست تو اولین خواسته ها اون جنبه های ارزشی ارزشی و توجه خدا رحمت کنه اصفاده ما میفرمون من هر یک از این اماکن زیارتی میرم به یه بزرگوارا میگم که من که قدرتشو ندارم پول گولم نزنه مقام گولم نزنه دنیا گولم نزنه تعلقات گوناگون روزمره زندگی منو از شما جدا نکنه نجا از شما میخوام میخوا یه قل به گردنم بندازید سرشو خودتون نگه دارید اینو تحمیدم که اگر من در حریم شما باشم، من اینو شما عزیزان میگم که دارید مشرف میشید اگر میخواید منو دعا کنید همینجور که میگم بگید نمیخوام جور دیگه بگی تو آراب نکنی. من من بارها دوستانی که مشرف شدن بهشون گفتم گفتم بگید تو ایوان هرگی رو محمدی قرار گرفتی بگید یا علی اگر یه آدمی که یه مقداری سرش به تنش ارزه یه سگ پاسبانی تو خونه داره گاهی گوشتی و سخانی جلو سگ میریزه که این پاسوانی خونه شو بکنه چهار تا سگ ولیگر از اطراف این سگر رو ببینم میان بغلش این تابخونه یک کمی احل بخشش رو جود باشه این سگار رو نمیزنه بره این حالا که برای سگ نگهبان مدرسه تا سگ دیگرم اومده و ولیگر یک کمی گوشت و سخون بیشتر بریدید اونام بخورم یه من از قول من درمیر از اول خودتون خودتون میزونیم از قول من در یا من اون سگ ی سگانی که در آستانه تو پاس گردن و از تو دم زدن گاهی خودمو با را کردم، ولی چه توی علی نمیذاره من از اون سگا جدا کنیم ما میخواییم در خریم تو باشیم خواد نسیر توسیر با اون عظمت وقتی بغداد از دنیا میرفت بهش گفتن خواد اجازه میدی رو برین نجف دفت کنیم گفت نه از کازمه خجالت این میدشن اینام منو پایین پای این دو امام دفت کنید رو سنگ قبرم بنیشید و کلب هم بازد <تصفح> زراعی اولوسی سگه از خواهر کرد رو سنگ قبرم بنیشید من همون سدی بودم که دم از ولایت بلایت احلویت نشستم. و خواستم کسانی که به ولایت بلایت انویز سارت می کنن کنم و جلو اینها رو بگیرم پیشا بگیرید یا علی ما میخوایم در خانه ی تو باشیم نه دار جای دیگه بدن ما رو ببرن نشون بگیرید اما برای زیارت آدابی ذکر کردن شما دو سه نفر به سلام همه با بقیه فرق داره که اون فرقش میگه ولی به صورت عمومی که برای آداب زیارت گفتن گفتن خب وقتی داریم ما به دیدار کسی می‌ریم که این مقامات براش مطرح شده با این عزمت یکیش مستحبه قصر کردن با زیارت مستحب هم هم مستحب قصر, کردن. قصر زیارت مستحبه بلی هم همه یکی قصر کرده، قصر زیارت مستحبه حت حال در خبزیه سعی کنید که کمتر از حد معمولی که میشه میخورید بخورید چون شکم پر بدن کمی تنبال میکنه کسر میکنه خواب از حد رو بدن میتنه بلیه اینکه این حسدگی لختگی جسد حاصل نشه تغذیه رو کم بکنید نه تغذیه به شکلی که توان زیارت نداشته باشید نه تغذیه داشته باشید ولی حجمش رو کم کنید که خیلی همبلی و لختی و بیحالی حاصل نشید دو حد سلمد دور در این سفر جز ضرورت و لازم حرف نزنید اینو خواهش میکنم به پرس کنید نکته ها داره تنیز زبان آقا کارهایی میکنه توفیقات ما را از ما میگید هر چه از مقدور جد لازم سکوت سکوت اگه قدرت سکوت ندارید اراده قلبه بر شهوت کلام ندارید این سنگ ریزه ای تمیز تحیه کنید بذارید تو دردت تا یه حرف بذارید نذاره یه از کاری رو مقید بشید این از کار رو بگیر سکوت سه حمولتون رو بالا ببرید سمید دادن بهتون اذیت کردن بد برخورد کردن جای شما بوده که دیگه اومد حلتون داد جای شما رو گره سندگی مال شما بوده که دیگه اومد جای بہتر رو گره همه تحمل کنید به خاطر اون بزرگانی که در راستای اونا هستید چون اونا ناظرن آقا اونا خوب میبینن که کیا دارن میان چجوری دارن میان به معروف و بعضی شعرهای ما حرفایی خوبی زده خوشتاشو ودا میکرد و یکی از ائمه گوه آقا دفت خالی اومدن من اید نیست ولی که من چیم چیزی برای شما بیارم بلی دست خالی برگشتن من برای شما عیبه دیگه معنی درست دست خالی برگشتن من برای شما عیبه شما خانواده ای نیستید که کسی از درخانه شما مریض برگرده اما اونا مذهر عدل و حکمت الهی هست هم. همه افرادی که میان و میرن دقیق همه زیر نظر دارن حساب شده زیر نظر دارن قرنماوی اون سیطره ملکوت بر ملک. اجازه شما به خاطر اونها سکوت کنید. بعدی غذا رو تحمل کنید. حتّی مقدور از در هتلی که را می‌رسید در این حرم، سرتون رو پایین ندازید به فیتره مقام اون امامی باشید که دارید می‌رید به سمتش. اذن دخول خوندید، من دو چیز رو سند از من نخواید الان خودم درا میگم سند نخواهید. بلی همین همینجوری عمل میکنم. بنا به جهتی من اجازه بدید واردش بشم. یک. اذن دخول خوندید یا یواشی خودتون برای خودتون اگر آن شرایط اجازه داد درجا برای حرم حر امانی روزه بخونید بد وارد بشید. البته روزه هر جا هم یه حساب داره. اگر لازم شد درمی‌کنم امیر امیرالمؤمنین اذن دخول خوندید، دم در چه روزه‌ای بخواید؟ تو حرم امام حسین چه روزه‌ای بخواید؟ روزه اینا این می‌نکسهای خوب کلی ارجو می‌کنم اذن دخول خوندید، ولی اون خودتون یواش بدارید خودتون درست کنید الان در محضر امیرالمؤمنین حضرت به شما امر کردن که روزه, روزه رو روزه رو بخوید. بعدی ذکر نادعلی رو تنهایی یواشکی بگیرید بنده بنابه جهاتی ارزو کنم قیمه دوست دارند وقتی وارد بر حرمشون میشید ذکر نادعلی رو بگیرید بعد وارد بشید حالا زیارت رو زیارت های وارد زیارت جامعه کبیره فی ایالیست فی ایالیست زیارت امین الله وارد شده با تو مخصوص و ما میان که توی مفاتی مقوم آشه خباس واقعا زحمت کشیده اون رو بهش توجه فرمانی با توجه و تو خودتون باشی واقعا اگه جاتون یکی دیگه مخواد بگیره عزیز من اطرار برای که بالا سر چنینه واسه یکی حول بدن با یعنی شیطونه او که مخواد به شما انایت کنه اگه شما دیدید جا نیتون بایدید رفتید نگاه میکنه. نهی خاطره رو شاید برای بعضی شماها گفته باشم شنیدنیه یکی از بزرگان امی تهران بود خدا رحمتش کنه. که علوم قلیبا وارد بود ایش از حقیمان از خودش شنیدن ایشون سالها سپرد کرده نماز سمرمای خونساری خوندن و شکلی هم براش تجلیل غا... تجلیل کردن اعتراض قائل شدن ایشون حدود مثلا 27-8 تال قبل بود من یادمه یا یه جلسه ای و من فرمودم که 50 ساله برد اون موقع فرمودم 50 ساله برد نمیشه هستن 70 ساله فرمودن من طلبه ای بودم مشهد این اوزای فعلی رو نداشت بازار منتحیم شد به صحنه گوهر شد و نزدیکی های فلکه آبیه که روحانی بود یه خونه دو طبقه داشت طبقه دوبومش رو گذشته بود فقط برای روحانیون و طلاق و علوم دینی که مشهد میان مجانی اون طبقه بالا رو در خیار اونا به عنوان زائر امان رضا فیش این من مشهد مشرف شدم با این اوضاع رو در سال قبل عرض کنم یه اتاقی طبقه بالای خونه این آلم دینی به من دادن من دو دست روزی حرم میرفتم میامدم یه می دیدم حال ندارم مطلب اونجوری که باید الان اون مثلا نمی کسره. سر شدم. تصمیم گرفتم که فردا مثلا زیارت رو با یه آدابی انجام بدم. خب یه کمی حجم قضا هم کم کردم و رو زیارت کردم و سر را من پایین که تو را به کسی بر نخورم و زشمی گفتم و وارد شدم حالا سر حرب مانوزا زیارت جامعه رو شروع کردم سر را من تو مفلاتی که حواسم به چیزی دیگه نشه و بیدم میتونم یه زیارتی حالا به قول خودش حالی انجام بدم در این بینیه طلبه ای که از من جوانتر بود و پیش من درس میخواهم ایشون از که از دور و اومد جلو با از آقا سلام ندیدم تو ذهنم گفتم وای حالا یه یمنی رسید ما داشتیم زیارتمون تو حال خودمون هستیم همچون که سرم کی کتاب بود نکاتی بود گفتم علیکم السلام آنجا گه کی مشاغل شدید بعضیشتر نراحت شدم, بفتم هست. شدم. که چند روزی است با آنجا کجا هستی تو اشتباه می شودم تا وقتی که اگه من دارم زیارت ها می کنم تا برو زیارت و بگو چیکار کارتی که یومدم کجا هستم این آقا سید سی لشیح منم حالم به هم ریخت. دیگه حال این این زیارت رو با حال ادامه بدم نه بود با یه آزردگی گفتم نه اینم زیارت نشد برگردم برم منزل استراحت کنم مجددا زمینه زیارت رو فراهم کنم چون تو این حرفا بود تجام تو علوم غریبه یه چیزایی اومده بود خب همین اومدم از پله این ساختمان برم بالا پله دو گون بودن و سه گون شکل از منه خامو گذاشتن و پله صافتونه از طلاقه منو صدا دارد آقای آسید فلان تمبله با چکان کردی اماموزا فرمان دیگه نیاد حرم و نرزیدم و من الان از حرم پاشدم و مگم و معلوم رجیه چیه باید همونجا برگشت هر جایی که احتمال میدادم این طلبه باشه رفتم گشتم مدرسه های علمیگر و مسافرخونه ها رو نزدیکی غروب و آفتاق توی یک مسافرخونه این طلبه رو پیدا کردم. تا دیدم زدم زیرگری که چی شده؟ گفتم که امروز پدرم رو در آبوردی چرا؟ گفتم قضیه اینه در زیر گریه که جا واقعش دلم شده کفتم آخه شما استاد منی؟ منم درش کردم اما سوال بپرسم اخی چه برخورد تندی بود با من کردی ولی حالا که امام رضا اینقدر لطف دارن یه زائر یه کمی دل شکسته میشه وقتی وا می کنه من ممنون امام رضا نه من از شما گذشتم هرچی دل داشتم به خاطر امام رضا بخشیدم من بیشون گفتم میشه چایی برام درست کنی؟ که از صبح حالا تشنه بودم برسنم خوب یه چای درو با هم چای خوردیم خبتم درم خونه استراحت کنم اومدم رو همون پلهی دوم یا سوم خامو گذاشتم سابخونه از پایین صدا زد آفید پلان امام رضا بودن حالا میتونی بیایم. نه نه و انکه تسمه و کلامی و تشهر و موان اونا میبینن ما برای جای بندی خدا را حول میدیم اونا میبینن ما برای دلیگ گرفتن یه فیره مرد پیر زن را حول میدیم می کارا رو زیارت حساب داره واقعا اگر دیدیم جمعیت اجازه نمیده حتی شد جا سنه بدید بیتی دیگه به دورتر اگه امام رضا یا امیرالمؤمنین یا امام حسین بخواد انایتی بکنه فقط بخاطر اون نخان میکنه عمل بر اساس من عرفتی. معرفتو توجه داشته باشیم به اگر کمک به دیگران بکنیم دست دیگران رو بگیریم نگذاریم دیگران عزیزت بشن ایسار کنیم بقیه رو بر خودمون مقدم کنیم هفت کم بزنیم حتی المقدوم سکوت داشته باشیم حجم غذا رو و این رعایت‌ها رو داشته باشیم پوزشت های اینجوری و از اینی که توی این اماکن مقدسه خیلی مهمه زیارت جامعه رو اگر خوندید یا زیارت دیگه بعدش دعای مکارم الاخلاق رو بخونید دعای عالیه المزامید رو بخونید که هر دو تو مفاتی اومده دعای مکارم الاخلاق دعای عالیه المزامید حتماً قبل از تشرف به هر حرمی و بعد از تشرف توجهی به امام عصر پیدا کنید به چه صورت ربنای تشرف توسل به امام زمان پیدا کنید به این معنی که آقا من به زیارت کسی می روم که جد شماست، خلیفه خداست و امروز اون مقامی که ایشون در پیشگاه خدا داشتن به به شماست شما اجازه بدید شما کمکم کنید شما وساطت کنید که من در مهده این بزرگواران فدی رفته بشم با این توجه نسبت به اما بعد از تشرف از حرم بیاد بیرون روبه جبله باشدید یه سلام به امام زمان بدید بگید آقا متشکرم که این مقدار موفق شدم امیدوارم کنبودها و ها رو شما با انایت امامتی خودتون ندیده بگیرید و جبران کنید و کمکم کنید این نسبت به هر اماکن زیارتی به صورت عام حرز کردم اما نسبت به حرم امام حسین علیه السلام یه آداب خاصی داره. چطور؟ داره که شما حرم هر امامی میرید، گست کنید، لباس تمیز بکوشید، ختون تونو معدر کنید، تون دارید به دیدار یک شخصیت بردست میرید، مؤدب، منظم، ذریع، زر... زر... زر... تمیز، معدر. ولی امام حسین استثناءم داره که با گرد و که از راه دارید برید. نمیدونم. نمیدونم شاید شاید بزرگی میگفت من بر مبنای گفته اون بزرگ میگم نمیدونم شاید اولین ظاهر امام حسین در گودال قتلگاه حضرت زینب بود حضرت زینب با چادر نیمسوخته هست با بدن کتک خورده هست. با سر روی خاکی رو نمیدونم های از میخواهم بگیم ما هم مثل عزت زیهر و مثل دائرین اولیه کربلا میخواییم سیارت اولیهمو با این حال باشه اینایی که میگم دیگه مستنده با آیات و روایات اینا نیست دیگه زوبه نسبتم نمیدم که بهت بشه ولی بنده از بعضی بزرگان راز گرفتم خودم این کارو نکردم. من کربلا هر سفری مشرف شدم اول میرم حرم حضرت عبالفض علیسو حضرت عبالفض رو واسطه میکنه که اجازه بگیرن درم حرم امام حسیم چون وزیر دربار امام حسیم حضرت عبالفض حرم حضرت عبالفض اول مشرف میشی ارده اداب شواهت مقدس زمر ونی هاشم بکنی حضرت عبالفض رو واسطه درار بدید به از نرز و وارد حرم امام حسینش که انشاءالله قنایت میکنم اما از مفتقای دیگه ای که باز در همه این حرم ها مهمه و باید توجه کرد یکیش قرآن خوندن و هدیه کردن به اون محصومینه حرم هر امامی که مشرف میشید هر مقداری توان دارید توی حرم بشینید الا تو حرام خسته شدی یا در حرم شب دارن می‌بندن برگشتی اومدید هتل هر مقداری که تو هتل وقت داری اندازه ای که به سلامتیتون دستر نداره که بتونید زیارتتون رو ادامه بدی قرآن بخونید و هدیه کنید به اون امامی که زیارتش کردید حالا بعضیا که مقیدن. حالا ولی زمان ها محدود شد مشكله مثلا نجفن یه خط مخونن هدیه کنن کربلان یه خط مخونن خازنین یه خط سامر را یه خط ممکنه این برای عموم ممکن نباشه هر مقداری توانستید قرآن بخوانید و هدیه کنید نکته دیگر به اندازه توان مالیتون هدقه بدید به اندازه توان مالیتون توانتون اجازه میده بیشتر نمیده کمتر به فکری نباشید که اینایی کلا میان کلو، اینا مستحق هستن یا نیستن. شما به احترام و اون بزرگوارانی که به زیارتشون میرید، اینایی که اطلاف و اون حرم میان، به عشق این که زائرین این بزرگواران یه انایتی بکنن، محرومشون نکنید. اونام محروم نبی اونام جبران بکنن. نظر به اندازهی که توان دارید، از نظر صدق زادن، کمک به زعفا و فبر یاد نره و یکی از آداب زیارت که خیلی اثر داره و میتونه مواخبی رو شامل حال آدم بکنه به اندازه‌ای که توان جسمیتون اجازه میده به همسفرها کمک کردن به عشق اون بزرگواران که بعضی از این بزرگواران بودن تو این سفرها با لباس مبدل میرفتن خادمی زائری نحنه به رو میکردن بعضی وقت و وقت بردی هم متواجیه می شدن وقتی متواجیه می شدن همان وقتی دادن به بقیه نگید بگذارید ما مثلا این هست حالا کسی فوان جسمی نداره اون یه بحث دیگریه خب چون وقت داره تموم می شود من جنبندی بکنم به دوست نکته و دیگر اجازه بدید بعضی عزیزان بعد اومدن علیتی که بحث امروز ما اول شد چون فردا یه اوتوبوس از جن ادوستان حسینیه به کربلا و نجب حتبات آلیات دیگه این دوستان خواستن که ما اینجا گلسه رو اخصاص بدیم به بحث زیارت جمبندی کنن خیلی سری من داد بشن فکر کردم که زیارت یک عمله هر عمل به اختضای معرفتی که پشتوانه آن عمله ارزش پیدا میکنه همونطوری که زیارت در حیات ظاهری افراد و اندازه معرفت ما نسبت به اون موارد ما را برخوردار میکنه در بعد از مرگ هم که در واقع آزادی نفس از تعلقات مادی است و لذا انایق افاظه حتی بیشتر ممکن است بشود، کم سر نمی شود ما این معرفت رو پیدا کنیم که داریم به دیدار یه همچو مواردی می و این موارد رو اگر از دید قرآن بخوای نگاه کنیم تأبیری قشرنی تر از مقام شلیفت الله نداریم اینا مقام شلیفت اللهی دارم مقام شلیفت اللهی یعنی مقامی که به ازن الله همه کاری دستکار خدا هسته همه کاری دستکار خدا حالا که همه کاری دستکار خدا هسته ما وقتی داریم خدمت اونها می رسیم اول بهتر است از, از لاک خود بیرون بیاییم یکمی بالاتر نگاه کنیم همون رابطه ای که با خدای یادم داریم شما خدا رو یه وقت عبادت میکنید به تمع بهش یا از سرس جهنم یه وقت خدا رو عبادت میکنید به خاطر خدا خدا یه وقت زیارت رو به خاطر احترام خود عیمه بگیرید من نیومدم زیارت چیزی بخوام در چی سر و وجودم همش خاصه است همش فرغرید من اومدم به شما عرض ادب کنم اومدم وظیفه‌مو انجام بدم شما عمرتون و وجودتون و زندگیتون و خانوادهتون همه رو در راه خدا دادی که ماها خدایی بشیم منم الان میام اینجا بگم به زبان حالم یا به زبان قالم منم سپاسگزارم منم قدردانم منم عرض ادب میکنم منم نسبت به شما ارادت میبرزم این یک طرف اگر خواستید یک کمی بحث بالا تغییر بدید خواسته رو مطرح کنید خواسته رو از سطح بالا مطرح کنید چه خواسته ای ما را جز اشیعان واقعی خودتون قرار بدید ما را از بابستیدی هایی که از در خانه شما جدا کنه نجات بدید این تغییری ای که استاد ما می فرمودم به گردن ما بندازید سرشو خودتون نگه دارید خواسته ها رو ببرید سطح بالاتر. جامعه بشری رو ببینیم، شیعان دنیا رو ببینیم، نیاز بشریت رو ببینیم، نجات بشریت رو بخوایی که در رقص همه اونها برای نجات بشریت پس علی زهور امام زمان علیه السلام مطبع میشه نزایی سنطلا آداب ظاهری داریم مثل کم خوردن مثل کم حرف زدن مثل تحمل رو بالا بردن مثل فتلمه دور خود رو از بعضی وابستگی های اطراف ردای کردن که نازمش هم اتا در زن حرکت سر به پایین انداختن و توجه و اطراف نداشتن که تمرکز ذهنی در این رابطه ایجاد بشه موقع ورود هر خرمی توسط به ما ما ارز پیدای کردم با اون بیانی که عرض کردم با اون پشتوانی معرفتی روزهی خوندم ولی تنهایی پیش خودتون ذکر نادعی گرفتن از دخول و تشرف و زیارتی که می بعدش هم دعای یا مکارم یا آلیت المزاری و قرآن خوندم و همچنین دعا برای عموم و اگر هم احساس میکنید نماز قضایی به احدتونه نماز قضا انجام دادن این ها دیگه کلیات بحث اما سعی کنید وقتهایی که اون دو سه ای که با اشاره بگم دیگه توان من بیشتر اجازه نمیده ده بحث و جمع کنم فعیب فرمایی در این سفر بیشتر به فکر فرو برید این تفکر ساعته هفت زلم اعبادت سب اینه من عزیزانی بودن یه این سفری اینجا شاید بودن یا هستن از مسجد شجره که محرم شدیم تسری بود سوار اتوبوس شدیم خب خیلی در دیگه یه رو از مسترش در دور شدیم خابیده و شراق و هم عملا خاموش ما دوسته نفر بودیم گفتم خالی شو دارید آروم دعای جوشنکدی رو با هم زمزمه کنیم آخییه دعای جوشنکدی رو هم خیلی خاصیه اول بعضی ها معترض شدن که اگه چراغ روشن باشه ما نمتیدیم به چرا خاموش چراغو بردشتیم چراغو بردشتیم که دایی جوجه کبیر دو سنپری باشه شجیه آروم که این صدا مانع خواب بزیان نشه ولی دایی اون رو که دست جمعی می‌خواستیم بگیم عملاً هی کمی دون صدا بالا میره باز دیدیم بعضیا معترضان که مانع خوابه من به رفقا گفتم ما در این سفر نمیتونیم بقیه رو اذیت کنیم خب هر کدومون تلهایی برای خودمون که از هنگرم بیرون نیاد که افراد اذیت نشد اما با خودم بردی که اینجوری فکر کردم واقعا این سفری که حالا تر روز از روز چیتر کمتر سفر از یه رویه ما حالا من راجعه عمره و مکه چیزی نگفتم فعلا در رابطه با سفر زیارتی محسومین علیه موسیقی حالا عمره یک چیزایی خواست دیگه یه هم پیدا می کنه. حالا کلی ارزو کنم ما یه همچه فرصتی در عمر چند برامون پیش چه چقدر نیاز داریم؟ از نظر جسمی این نظرهایی که از حالا با این فرصت باقی سدیدر از نظر جسمی الان مثلا میگن اقا شش ماه یه بار مراجعه کنید یه چه کاف کنید آزمایش خونی بدید یه سونگرافی برید, برید برید چه خبره ما بیاییم بگی چند بار ممکنه این توفیق دستمون بده قربانا بریم این توی اتوبوس به جای خف زدن جلو ما بی وقتا خدایا من بیچاره سر منم واشه از هم همه هم بیچاره سر من اینایی که میگم خجالت میکشم منم دل میخواد هر کاری میدارم دلم میخواد اینجوری باشم هر وقتها با خودم فکر میکنم یه آدمی که تو اتوبوس نشسته مثلا از سر مرز ایران به طرف آلمان این شوخیه کجا دارم میرم از نجف سوار اتوبوس شدم کجا داری میری کربلا جایی که ملائک افتخار میکنن به اونها خدا اجازه بده اونجا سیر کنن اولیای الهی آرزوشون اینه تو صحنه کربلا حواف کنن خب من چطور میتونم حرفای معمولی بزنم قهره بخمدم شلوغ کنم من نمیگه اینا حرامه با ولی حیف نیست چیکار کار کنم یا قرآن بخونید یا دارید تو فکر چشماتون رو ببندید کجا دارم میرم فرض رو بر این بگذارید الان از وجه کنید عرکت میکنید برید کربلا فرض رو بر این بگذارید اونجوری فکر کنید امام حسین تو کربلا خیمه زده عمر سعد و شمر و اطرافیانم دورش رو گرفتن از خوفه یه میتونم میتونن بیان خودشون رو به امام حسین برسونم بعضیام مثل هر میشن دردیان مثل عمر سعد من الان از کوفه را افتادم بیان برم کربلا من جز کدوم یک از این گروه میتونم باشم واقعا با شکل زندگی که من دارم نسبت به زمان خودم من جز گروه هر حساب میشم یا جز گروه عمر سعد از کجا بپر من حساسیتم به نماز چقدره؟ حساسیتم به هجاب چقدره؟ حساسیتم به قیبت و دروغ چقدره؟ حساسیتم به حق و چقدره؟ حساسیتم به خ و افا چقدره؟ حساسیتم به کار خیر چقدره؟ من حساسیتم نسبت به قبه گناه چقدره؟ خب اینا می... اگه من واقعا یه گناه منو میلغزونه و منی که الان از کوفه دارم میان میرم کربلا سپاه یزیدم از کوفه اومدم رفتن کربلا اینا فکر رو میخواد و وقت در فکر دور بر ندارم نه من که الاندالله به نمازم ارساسم به هجابم ارساسم من که آدم بدی نیستم نه این می... اینجا برگردم میگم یا امام حسید. من دارم میان ولی میان سراغ طبیب میام سراغ معلم سبیهی که هر درگی رو میتونه دوا کنه و معلمی که میتونه استعداد درونی منو رو دگرگون کنه من میخوام وقتی از این سفر برمیگردم شکل دیگری باشم یه تعبیلی من دا در داره که این تعبیل رو برای حج بعضی به کار بردن من همین رو میخوام برای این زیارت هم به کار بدارم یه خاطره یه جلسه انشانا ما را هم دعا کنید و با دست فر حمیهی برگردی وند شدرا میگه که ما در این عالم سیر من ال خلق ال الحق داریم سیر من ال حد فل داریم سیر من ال حد فل خلق داریم سیر من ال خلق فل خرقه الحق داریم در حالی که فلسفه عرفانی حج و مزاره میگن در حقی کاملا پیدا شما از خونه و زندگی و تعلقات دست میکشید به سوی خانه خدا میشه سیر من ال خلق ال الحق خرخ خانه خدا میشی، توافه دور خانه خدا قبل هج، سیر من الحق فلحق در میگه دید از مکه، سیر من الحق الى الخلق بعد ادامه زندگی میدید حالا که در میان مردمی، سیر شما خلق بعد از مراجعه من الحق، مثل قبل یا فرق کرده. این بار سیر من الخلق فلحقه به باید باشد خب کعبه نشان است که ره گم نشود حاجی احرام دیگر من ببین یار کجاست از این دید زیارت نجف زیارت کربلا زیارت تازمین و را زیارت امام رزا که خلیفه خدا دیدن خلیفه خدا میرید پس این سیرون من خلق علم حق بدانید در ایام زیارت و تشرف در اون اماکن سیر من الحق فلحق ببینید وقتی از زیارت برمی‌گردی سیر من الحق ال خلق ببینید ولی بعد از زیارت سیر من ال خلق فل یعنی همیشه یادتون باشه شما تو حرم امام حسین و امام حسین عهد داشته می بینید ما با مولوی آن باشه این از خدا بخو خدا یا ترا به حق حقیقی عتباتالیات آدیات به بندگان با معرفت در جوار محسومین علیهم السلام غسمت میدهیم و همه ما توفیق عمل با معرفت عنایت بفرما سفر همه مسافرین خفر بگردان درک که معارف حقه زیارت معصومین را به همشون عنایت بفرما مشمول دعاهای خاصه امام زمانشون بگردان توفیق زیارت اسباط عالیات بعد از ظهور امام عصر در رکاب امام عصر همه ما عنایت بفرما و سلام علیکم و